عاشق اموسان. به باری همان حوالی در خیابان کارنی رفتم تا از تلفن سکه یا آنجا استفاده کنم بار خالی بود فقط بارمن بود و خانم چاقی هم پشت تلفن در حال حرف زدن نبود فقط آنجا ایستاده بود و برای شخصی که آن طرف خط بود سر تکان میداد تصمیم گرفتم با پنج دلار آیدی تازهم جلدی یک آبجو بزنم تا طرف صحبتش تمام شود روی یک چارپایه نشستم و من از پشت بار به سمت من آمد. ظاهرش آنقدر عادی بود که تقریباً به چشم نمی آمد. گفت چی می گفتم فقط یا آبجو. بارمانه گفت بهتر زود بندازی بالا. هوا که تاریک شه یه هم می بینی جاپانی اومدن اینجا. حتما فکر می حرفش خیلی بامزه بوده و از ته دل به جوکش خندید. همانطور که داشت میخندید گفت جاپانی عاشق آشق اینجا که بیان، تا هر آبجو تو کالیفرنیا هست، میارم بالا. تا آخرین چیک که به خانم چاقه نگاه کردم، همانطور مثل اردک سرش را بالا و پایین می‌برد. لبخند پتو پهنی روی صورتش بود. ظاهرش طوری بود که انگار تازه مکالمه تلفنی را شروع کرده که ممکن است سالها به طول بیانجامد. به بارمنه گفتم آبجو رو فراموش کن. و از روی چهارپایه بلند شدم و به سمت در رفتم. هفته‌ها بود که آبجو نخورده بودم. و خوش نداشتم ای شاب جخوریم را یک بارمن بیشعور خراب کند به گمانم یک تختش کم بود تحجابی نداشت که بارش خالی بود و غیر از آن خانم چاقی که با تلفن سکهی تیر پلاو پل برداشته بود هیچکس کس آنجا نبود اکنون من تو و تلفن را به عقد دائم یکدیگر درمیآورم در می آورم. از بار که بیرون میآمدم تا به خیابان کارنی برگردم بارمن خندید و گفت تا آخرین چیکه؟ <تصفح> پام را که بیرون میگذاشتم خوردم به یک چینی. همان وقت که من پام را بیرون گذاشتم، داشت از آنجا رد میشد. هر دو از این برخورد جا خوردیم. اما او بیشتر از من جا خورد. وقتی با هم برخورد کردیم، بسته زیر بغلش بود. با تر دستی مختصری مانع از افتادن بسته روی زمین شد. تصادف ما اعصابش را به هم ریخته بود. نگاهی به من انداخت و گفت: "ژاپنی نیستم." و در حالی که به سرعت داش دور میشد، ادامه داد: "چینی امریکایی هم، عاشق میهنم عاشق اموسام مشکلی نیست چینیم نه ژاپنی وفادارم مالیات میدم سرم تو کار خودمه دریک یه اتوبوسی بیش از حد پیچیده میشد. فکر کردم بهتر است بعدا مذاک که آرام تر شد به مادرم تلفن کنم. رو دور برد بودم اما خیلی هم نمیخواستم روی شانسم حساب کنم. برای همین تصمیم گرفتم برفم خانه و قبل از اینکه مشتریم را ملاقات کنم دوشی بگیرم. شاید پیراهنی توی کمک پیدا میکردم که تر و تمیز به نظر برسد. دلم میخواست با بهترین وضع ممکن در مقابل مشتریم ظاهر شوم. حتم هم زده باشم از خیابان کارنی به خیابان ساکرامنتو رفتم و منتظر اتوبوسی شدم که مرا از ساکرامنتو به نابهیل نزدیک آپارتمانم ببرد خیلی نباید منتظر میماندم. اتوبوس تو ساکرامنتو چند چار را پایین تر از ایستگاهی بود که من منتظر بودم تماشا کن بخت با من یار بود فکر کردم که شانس و اقبال هم مثل موج است وقتی که آمد آمده از دیگر واقعا قصد داشتم ول کنم و سوار اتوبوس شوم. هفتهها بود که چهار گوشه سانفرانسیسکو را پای پیاده گز کرده بودم. از همیشه بی تر بودم، اما آن روزها دیگر سپری شده بود. سوار اتوبوس شدم، سکه پنج سنتی را دادم و روی صندلی نشستم. انگار پادشاهی باشم که بر آریگه آکبندش تکیه میزند. <تصفح> اتوبوس که در ساکرامنتو به افتاد، آه، از سر لذت کشیدم. گمانم یک خورد زیادی بلندراه کشیده بودم چون خانم جوانی که روی صندلی مقابل من نشسته و پا روی پا انداخته بود پاهاش را رو از روی هم برداشت و سرش را با حالتی معذب به سمت دیگر چرخاند احتمالا تک, تک روزهای نکبتی عمرش را سوار اتوبوس شده شاید حتی تو یک اتوبوس به دنیا آمده بود و یک بلیط مادامالعمر داشت و وقتی هم که میمرد تابوتش را با اتوبوس به قبرستان میبردند البته اتوبوس را حتما رنگ سیاه میزدند و حميه ها را هم با گل‌هایی شکل مسافران پریشان حال پر می‌کردند. بعضی هاقدر قدر چیزهایی را که دارند نمی‌دانند. تابل‌های سفر کوتاه اتوبوسی تا بالای تپه وقت خوبی بود تا یک خورده به سریال کارگاه خصوصی هم در بابل فکر کنم. لم دادم و بابل سراسر ذهنم را گرفت. مثل شیره کرم افرا که روی پنکیک‌های داغ تزئینی بریزند. مم، چه عالی. مم، بابل. باید اسمی برای سریالم انتخاب می‌کردم. اسمش را چه می‌گذاشتم؟ بگذار ببینم. شروع کردم به فکر کردن به اسامی سریال‌هایی که در چند سال گذشته دیده بودم. من واقعاً عاشق فیلم و سینما هجادوگر جادوگر وحشتافرینان شبه آسا ماجراهای کاپیتان مارول دکتر ابلیس اسرارآمیز سایه تبلهای فومانچو و پنج آهنی اینها همگی عناوین مناسبی بودند و من هم برای سریالم عنوانی به همین خوبی میخواستم همانطور که اتوبوس راه بالای نابیل را در پیش گرفته بود توقف می کرد و دوباره راه می افتاد. مسافران را سوار را پیاده می کرد یک ست تایی عنوان به ذهنم رسید بهترین گذینه اینها بودند هولانگیزی دکتر عبدالفورسایت ماجراهای یک کارباه خصوصی در بابل و شتافرینی سایه های روبوتی خب داشت بامزده می شد های فراوانی پیش رو داشتم اما نباید اجازه میدادم خودسرانه خود سرانه عمل کنند بابل را محکم مهار کرده بودم اما باز هم دو ایستگاه دور شدم و حالا باید دو چار راه را پیاده بر کشتم. باید خوب حواسم را جمع میکردم، مخصوصا به این خاطر که یک مشتری داشتم و نباید اجازه میدادم بابل دوباره ذهنم را اسیر کند. گور جمعه ها یک تلفن سکهی به چشمم خورد شاید بهتر بود به مادرم تلفن میکردم و قال قضیه را میکندم هرچه زودتر زنگ میزدم زودتر از اجبار زنگ زدن به او خلاص میشدم اینطوری یک هفتهی خیالم راحت بود یک سکه پنج سنتی انداختم و شماره گرفتم ده بار زنگ خورد و کسی گوشی را برنداشت. گوشی را گذاشتم نمیدونستم کجا رفته بعد یادم آمد که امروز جمعه است و مادرم جمعه میرود گورستان سر گور پدرم گل بگذارد. کار هر جمعهش بود. آداب آینیش بود. در سرما و گرما هر جمعه به زیارت گور پدرم می رفت. شاید امروز روز مقرر برای زنگ زدن به مادرم نبود. فقط به یادش می که من وقتی چهار سالم بوده پدرم را کشته بودم. نه بهتر بود که فردا تلفن کنم. این میتوانست اقدام زیرکانی از جانب من تلقی شود در فکر آن روزی فرو رفتم که پدرم را کاشته بودم تا آنجا که یادم میآمد روز یکشنبه بود هوا خیلی گرم بود و یک سواری نوی مدل تی کنار خیابان جلوی خانه ما پارک کرده بود و من قبلا وقت ماشین رفته بودم و از نزدیک دیده بودم چه ماشین نویی است آن موقع من یک بچه کوچولو بودم و یک راست رفته بودم سراغ ماشین و دماغم را صاف گذاشته بودم رو گلگیرش درست و حسابی بوش کرده بودم. به نظرم بهترین بوی دنیا بوی چیزهای نو و آکبند است. حالا چه لباس باشد چه میز و صندلی چه رادیو چه ماشین و چه حتی لوازم خانگی مثل توستر یا اتو برقی. که باشند برای من همگی بوی خوبی دارند. هر حال در خاطراتم به صبح آن روزی برگشته بودم که پدرم را کشته بودم. تا آنجا پیش پیشرفته بودم که یادم بیاید دماغم را روی گرگیر یک ماشین مدل تی نوی نو گذاشته بودم که ناگهان حواسم را به جای دیگری دادم نمیخواستم خاطره کشتن پدرم را دوباره زنده کنم برای همین راستای افکارم را عوض کردم نمی‌توانستم به بابل فکر کنم وگرنه ممکن بود باز گند بزنم برای همین به مشتریم فکر کردم مشتریم که بود قیافش چه شکلی بود چه کاری باید براش می‌کردم چرا باید اسلحه داشته باشم؟ اگر از من میخواست کار غیر قانونی بکنم چه؟ البته اگر همچنین درخواستی داشته باشد حتما تن می‌دهم مگر اینکه بحث بر سر کشتن کسی باشد. گدارا چه به چانه زدن؟ مسافری که توی قایقم نشسته باید بگوید کجا بروم. اما به هر حال من که بنا نداشتم کسی را بکشم. این تنها کاری بود که نمی‌کردم. واقعا متأسف بودم. من به آن طول لعنتی نیاز داشتم. نمیدانستم مشتریم مرد است یا زن همه چیزی که میدانستم این بود که بود ساعت شش عصر جلوی ایستگاه رادیو با یک نفر ملاقات کنم مشتریم میدانست که من چه شکلی هستم بنابراین نیازی نبود من بدانم او چه است. فقط مفلس آس و پاسی مثل من میتوانست این اوضا را درک کند و این اوضا برای من کاملا قابل درک بود اسمیت فکر کردم به اینکه اسم یا جنسیت مشتریم را نمی‌دانستم یک جورهایی ذهنم را دوباره متوجه بابل و سریالم کرد. بابل بعضی وقتها اینجوری سراغم می‌آید. در حالی که هنوز حتی اسم همه کاراکترهای اصلی را مشخص نکرده بودم، تلاش برای انتخاب اسم سریال چه معنایی داشت؟ البته اسمی برای شخصیت منفی ماجرا انتخاب کرده بودم. دکتر عبدالفورساید اما حتی برای خودم هم هنوز اسمی انتخاب نکرده بودم ای بابا کجا کجاست بهتر از اول اسمی برای خودم انتخاب کنم بلکه خواستم از آن در عنوان اثر استفاده کنم قبلا در رمان کارگاهیم در باره بابل که تازه از جلدش درآمده بودم برای خودم اسم ایس استگ را انتخاب کرده بودم اما دوست نداشتم در ماجره های سریال بابلیم هم اسمم همین باشد دوست داشتم اسمم را عوض کنم مثلا وقتی قهرمان بیسبال بابل بودم از اسم سامسان راس استفاده می کردم. اما دیگر بسم بود. من به یک اسم جدید برای کاراکتر خودم در سریال نیاز داشتم. همانطور که آن دو دوچارراه را برمیگشتم تا به ایستگاه مورد نظر برسم، یک چندتا اسمی را توی ذهنم مزه مزه کردم. از اسمیت خوشم میآد. نمیدانم چرا؟ ولی من همیشه از این اسم خوشم آمده. به نظر بعضی ها این یک اسم معمولی است. برای من این طور نیست. اسمیت. ترکیبات مختلف اسمیت را توی ذهنم مرور می کردم. اسمیت. کری اسمیت. هومفری اسمیت. جورج اسمیت. مثل جورج رفت. والاس اسمیت. پانچو اسمیت. لی اسمیت. مارگان اسمیت. گانبوت اسمیت. رد اسمیت. کارتر اسمیت. رکس اسمیت. کدی اسمیت، فلینت اسمیت، تری اسمیت، لفینگ اسمیت، سرگرد اسمیت، این یکی را خیلی دوست داشتم اوکلاهاما جیمی اسمیت، اف دی اسمیت با اسم اسمیت که بخوایی ترکیب سازی کنی قطعا یک عالم گزینه می شود مطرح کرد بعضی هاشان اسمهای مناسبی بودند اما هنوز نتوانسته بودم به یک اسم ایدئال دست پیدا کنم و به چیزی کمتر از یک اسم ایدعال هم رضایت نمیدادم. چه اجباری بود؟ موسیقی چ درباره ترکیبات اسمید به عنوان اسم یک کارگاه خصوصی در بابل فکر می کردم که دیدم خیابان مورد نظر را رد کردم دو چهار راه از ایستگاه خودم دور شده بودم و باید دوباره برمیگشتم احساس حماقت می کردم چون از پس کار ساده مثل این بر نمی آمدم. آن هم در حالی که فقط چند ساعت به ملاقات با اولین مشتری بعد ماهها مانده بود. برای من فکر کردم به بابل می توانست کار خطرناکی باشد باید حواظم را حسابی جمع می کردم. در خیابان ساکرامنتو عقب گرد کردم و حسابی مواظب بودم دوباره به فکر بابل نیفتم. وقت راه رفتن وانمود میکردم عمل لببرداری پشت پیشانی داشتم.